قصه های هزار یک شب شبه بیست و نهوم گفت من به دو گفتم که تو لامحاله کشنده من خواهی بود دلاک گفت یا سیدی بس که من کم سخنم مرا مردم خاموش همی خوانند. و برادران مرا نامهای گذاشته اند. برادر نخستین مرا بقبوق و دومین را هدار سیومین را بقبق و چهارمین را الکرالاسوانی و پنجمین را اشار و ششمین را شغالق نامند و هفتمین را خاموش گویند که آن منم چون دللاک سخن بسید دراز کرد دیدم که نزدیک است که زهره من بشکافد به خادم گفتم ربع دینار به دود داده روانش کن که مرا حاجت به سرتراشی نیست دلاک گفت آقای من این چه سخن بود که گفتی من چگونه خدمت نکرده مزد بگیرم خدمت تو مرا فرض است و اگر هیچ مزد نگیرم باکی نیست تو اگر قدر من ندانی من رتبت تو را می شناسم پدرت رحمت الله علیه بسی احسان با من کرده و او مردی بود با سخاوت و او روزی مرا بخواست پیش او رفتم جماعتی پیش او بودند با من گفت رگ همی خواهم زدن من استرلاب گرفتم و ارتفاع خورشید بدانستم دیدم ساعتی است نامیمون و رگ زدن بسی دشوار است او را آگاه کردم سخن من بپذیرفت و صبر کرد تا ساعت سعد بر آمد و با من مخالفت نکرد و به من سپاس گفت و آن جماعت نیز شکر کردند و پدرت رحمت الله علیه به یک رگ زدن صد دینار زر به من میداد. گفتم خدا بیا پدرم را که چون توی آشنا بود دلاک خندیده گفت سبحان الله من تو را خردمند میدانستم. گویا که بیماری عقل از تو برده است من نمیدانم که شتاب تو از بهر چیست میدانی که پدر تو بی مشورت من کاری نمی کرد و بزرگان گفتند المستشار معتمن چون من کسی نخواهی یافت که دانا و هوشیار و امین باشد مرا عجب آید که من بر پای استاده به خدمت مشغولم و هیچ نمی ولی تو از من همی رنجی اما من از تو نخواهم آزردن که پدرت نیکویی‌های بسیار با من کرده گفتم به خدا سوگند که تو مرا بسیار رنجاندی و سخن بسی دراز کردی قصد من این بود که زود سر مرا تراشیده بروی پس من در خشم شدم و خواستم که از جا برخیزم و دیگر سر نتراشم گفت اکنون دانستم که دلتنگ شده ای ولی عذرت را بپذیرم که خرد نداری و هنوز کودک هستی چندی نگذشته که من تو را به دوش گرفته به دبستان همی بردم من سوگندش داده گفتم بگذار که از پیه کارخیش بروم آنگاه از قایت خشم جامعه خود را بدریدم چون این حالت بدید تیغ بگرفت و بر سنگ همی کشید که نزدیک شد روانم از تن برود پس از آن پیش آمد و قدری از سر من بتراشید پس دست برداشته باز ایستاده گفت آقای من عجله از شیطان است شتاب مکن کن در سر روزگار شب بازی هاست پس از آن گفت آقای من گمان ندارم که تو رتبت من بشناسی. مرا دست به سر پادشاه و امیر و وزیر و حکیم و فقیه همی شاید و شاعر در مدح امثال من گفته است این صنعت شایان که به دست است مرا آن زن نبری که او شکسته است مرا بر تارک سروران همی رانم تیق سرهای ملوک زیر دست است مرا گفتم بیهودگوی بس کن که مرا دلتنگ کردی و خاطرم بیازردی گفت گمون دارم که شتاب داری گفتم آری آری گفت آرام بگیر که شتاب شعار شیطان است و سبب پشیمانی و ناامیدی و پیغمبر علیه السلام فرموده که بهترین امور آن است که آن آرامش است و به خدا سوگند که من از کار تو به ری بندر شدم باید سبب شتاب با من بازگویی بیم دارم که کار خوبی نباشد هنوز سه ساعت به وقت نماز مانده پس در خشم شده از تره بینداخت و استرلاب بگرفت و روی بر آفتاب بیستاد. زمانی نگاه کرد و گفت که سه ساعت بیکم و زیاد به وقت نماز مانده. من به خاموشی سوگندش دادم. باز از تره بگرفت و به دنسان که نخست بر سنگ کشیده بود، باز بر سنگ همی کشید و پیدرپی پی سخن همی گفت. تا اینکه قدری نیز از سر من بتراشید و گفت: «من از شتاب تو بسی ملولم اگر مرا از سبب آن آگاه می کردی سود تو در آن بود و پدرت نیز مرا از کارهای خود آگاه می کرد چون من دانستم که مرا خلاصی از او محال است با خود گفتم که، هنگام نماز نزدیک شد من اگر پیش از آن که مردم از مسجد به درایند به نروم دیگر پس از ظهر مرا به معشوقه راهی نخواهد بود پس او را سوگن دادم که بیهودگوی ترک کن و گفتم که به خانه یکی از یاران مهمان خواهم رفت چون حکایت مهمانی شنید گفت امروز عجب روزی از تو به من رفت که من دیروز جمعی از دوستان خود را مهمان خواسته بودم اکنون به یاد آمدم که بهر ایشان تهیه زیافت ندیدم و در نزد ایشان شرمسار خواهم بود گفتم از این کار ملول مباش من خود مهمانم تو مرا خلاص کن آنچه که در خانه من خوردنی محیا کرده اند به تو میدهم گفت خدا تو را پاداش نیکو دهاد بازگوی که بهر میهمانان من چه در خانه داری گفتم پنج ظرف تعامه است و ده جوجه سرخ کردند و بره بریان نیز هست گفت بگو حاضر سازند تا به عیان ببینم گفتم همه آنها را حاضر آوردند چون بدید گفت شراب نیز خواهم گفتم شراب نیز آوردند گفت آقای من چیزی بر جای نماند مگر اود پس گفتم صندوقچه آوردند که اود و انبر و مشک به صندوقچه اندر مساوی پنجاه دینار بود آنگاه تیغ فروهشت و او و مشک و انبر را یک یک از صندوقچه به در آورده به این روی آن روی همی گردانید و به دقت مشاهده کرده به صندوقچه باز می گذاشت چندان که من از زندگی سیر شدم و نزدیک شد که روانم از تند برود و وقت از سینه من تنگتر شد او را به پیغمبر اسلام سوگند دادم که تمامت سر مرا بتراشد. آنگاه تیغ برداشت و کمی از سر من بتراشید و قد راست کرده گفت ای فرزند نمیدانم دانم که به نیکویی های تو شکر گذارم یا به خوبی های پدرت سپاس گویم مهمانان امروز من از احسان تو خوشنود خواهند شد و اگر خواهی مهمانان من بشناسی، شناسی زیتون و سلیتون تاب و اوکل سبزی فروش و اکرشی بقال و حمید زبال و اکارش پالاندوز است و هر کدام از ایشان به ترزی ابیات خوانند و به نوعی برقصند من سخن دراز کردن دوست ندارم و کارهای ایشان یک یک نتوانم شمرد اما مختصری بازگویم که گر مابعی مردی است ادیب این شعر همی خواند گرم شب سوی آن محرو نتازم نتابد دوریم آید بپیشم و اما زبال مردی است ظریف همی رقصد و همی خواند نانی که در دست زن من هست در صندوق نیست هر یکی از یاران را ظرافتی است که در دیگری یافت نمی شود. اگر تو به نزد ما آیی و پیش یاران خود نروی از برای تو بسی خوشتر است. تو از بیماری برخواسته ای و بیم آن دارم که در میان یاران تو یکی پرگو باشد که از پرگفتن تو را بیازارد. بهتر این است که به نزد یاران من آیی. و صحبت ایشان را قنیمت شماری و از لطایف ایشان فره که شاعر گفته هر وقت خشک دست دهد مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پس من از قایت خشم خندیدم و گفتم تو کار من به انجام رسان تا من بروم و تو نیز زودتر رو که یاران تو چشم براه هند. گفت قصد من این است که تو با یاران من معاشرت کنی که اگر به یک بار ایشان را ببینی دیگر ترکشان نتوانی گفت گفتم مرا فرض است که یک روز یاران تو را دعوت کنم ولی امروز پیش یاران خود بایدم رفت گفت اکنون که قصد تو این است صبر کن تا من این خوردنی ها را که تو احسان کرده ای به خانه برم تا یاران من بخورند و من خود به پیش تو باز آمده به هر جا که خواهی رفت با تو بیایم گفتم تو به نزد یاران خود رو و با هم به صحبت مشغول شوید مرا نیز بگذار که پیش یاران خود بروم گفت من نخواهم گذاشت که تو تنها بروی. تو همه جا از باخرد مردی ناچاری و از من فرزانه کس نخواهی یافت گفتم جایی که من میروم دیگری نتواند آمد گفت گمان دارم که با زنی وعد اندر میان دارید وگرنه من از همه کس سزاوارترم که با تو بیایم و مرا بیم از آن است که پیش زنی بروی که نامناسب باشد و در آنجا کشته شوی این شهر بقداد است و بسی فتنه در زیر سر دارد همه کس نتوانند که در این شهر همه کار کنند خاصه در این روز گفتم ای شیخ بدفال این سخنان چیست که با من همیگویی؟ چون خشم زیاد من بدید زمانی سخن نگفت و تمامت سر من بتراشید آنگاه گفتم خوردنی ها را بردار و به نزد یاران خود شو من به انتظار تو نشستم تا بازگردی و به وعدگاه برویم گفت تو مرا فریب دهی و همی خواهی که تنها رفته خیشتن به هلاکت اندازی پس سوگند داد که از اینجا بر مخیز تا من بازگشته با تو بیایم و از انجام کار تو آگه شوم. گفتم آری نشستم ولی دیر مکن بردنی و شراب و عود برداشته از پیش من بیرون رفت و آنها را به حمال داده به خانه فرستاد و خود پنهانی ایستاده بود پس من برخواسته تنها روان شدم و به عجله رفته به خانه قاضی رسیدم همانا این دلاک در دنبال من بوده و من از وی آگاهی نداشتم چون دیدم که در خانه قاضی باز است به خانه اندر شدم در آن حالت قاضی از مسجد به خانه باز آمد و در خانه را فرو بستند و این شیطان قلتبان به میان ساحت اندر بوده است قضا را از کنیزکان قاضی گناهی سرزده بود قاضی به گوش مال او برخواسته تازیانه بروزد فریاد از کنیزک بلند شد این دلاک را گمان این که مرا همی زنند و فریاد من است که بلند همی شود. آنگاه فریاد براورد و جامه های خود بدرید و در خانه بگشود و در برابر در ایستاده خاک بر سرکنان از مردم دادرسی میکرد و می گفت القیاس که خاجیگ من به خانه قاضی کشته شد پس از آن به سوی خانه من رفته خانگیان مرا خبر داد خود پیش افتاده قلامان و خانگیان من به دنبال او و مردم محله به دنبال ایشان بیامدند و فریاد واسه و قتیلا به آسمان بر میشد و به دین سان همی آمدند تا به در خانه قاضی گرد آمدند قاضی حراسان به در آمده چون گروه گروه مردم را در آنجا یافت به حیرت اندر شد و سبب باز پرسید غلامان من گفتند تو خاجه ما را کشته ای قاضی پرسید که خاجه شما کیست و به چه گناه او را کشتم که سبدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروپاست